سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتن یه کانال هزار افسان. امروز هم در خدمتتون هستم با ادامه داستان زیبای قلبی از یخ. داستان رو تا اونجا شنیدید که شاهزاد مانیکین به خاطر اشتباه پدر و مادرش در مراسم نامگذاریش مورد خشم و قضب یکی از پریها قرار گرفت. اما پریجنستا که محافظ قلم رو اونها بود، اون رو از پدر و مادرش گرفت و با خودش به قصر برد و در کنار زنی روستایی اون رو بزرگ کرد. حالا شاهزاده مانکین یا گوتولی خزدار بزرگ شده و روزی که در شهر میچرخید، اونجا دید ادهی دور هم جمع شدن و کسی صحبت میکنه. اون داشت می‌گفت که اگر کسی بتونه به قله کوهستان یخی بره، نه تنها سابلای زیبا از آن او خواهد شد، بلکه تمام قلمرو اون که به زودی به ملکه هم تبدیل میشه نصیب اون میشه شاه تصمیم گرفت این کار رو انجام بده چون وقتی که تصویر سابلای زیبا رو دید یک دل نه صد دل عاشق اون شد اون بدون اینکه به پریژنستا چیزی بگه راهی سفر شد البته که پریژنستا همه جا از اون می کرد. تا اینکه یک روز سوار قایقی شد و به مسیر خودش ادامه داد اما توند بادی قایق رو در هم شکست و اون وارد جزیره شد روزها شاهزاده تنها در اون جزیره زندگی میکرد تا اینکه روزی دید کشتی نزدیک جزیره لنگر انداخت اون وقتی که وارد کشتی شد دید که هیچ کس روی انشه نیست و وقتی که بیشتر نگاه کرد دید که بله تمام سرنشینان کشتی انگار که مردند و تبدیل به درختانی از ایموجی شده شدند. اون با زحمت زیاد تونست سرنشینان رو از کشتی بیرون بیاره و با الهام پریژنستا از گیاهان داروی استفاده کرد و اونها بعد از چند روز سلامتیشون رو به دست آوردند و تونستن آماده حرکت بشن سرنشینان کشتی داستانشون رو اینطور تعریف کردند که در مسیر پردرخت در حرکت بودند که تند بادی ناگهانی اونها رو گیر کرد و بعد گرد و غباری بلند شد و هر چیزی رو که از فلز نبود توی کشته منجمد کرد و بعد هم همشون بیهوش شدن شاهزاده عمیقا مجذوب این داستان عجیب شد اون مقدار زیادی از قبار کپ قایق رو جمع وری کرد به امید اینکه بعداً به دردش بخوره حالا بریم با هم دیگه ادامه داستان رو شاهزاده شاهزادمانکین و سرنشینان کشتی شادمانه جزیره متروک رو ترک کردند بعد از سفری خوش و طولانی در دریای آرام، بالاخره چشمشون به یک خشکی افتاد. تصمیم گرفتند به ساحل برن تا هم مقدار زیادی آب تازه و طوشه راه برای خودشون فراهم کنند و هم اگر ممکن باشه بفهمن کجا هستند و در چه مسیری پیش میرن. وقتی که به ساحل نزدیک می شدن به این فکر افتادند که نکنه اونجا هم سرزمینی خالی از سکنه باشه چون هیچ انسانی دیده نمیشد. نزدیک شدند شدن، متوجه شدن، جنبو وجود داره. بین گردخایی که به هوا بلند شده بود، حکل سیاه کوچکی هرچند محومات می دیدند. به نظر می رسید، اونها به سمت نقطه مشخص، یعنی به طرف ساحل می دویدند. بالاخره، سرنشینان کشتی با تعجب دیدند که اون حکل تعدادی سگ مدراز زیبا، با گوشهای آویخته هستند که سگ نگهبان رو بر پشتشون حمل میکنند. گروهی سگ سرباز هم پشت سرشون میومدند. همه اونها مراقب سرنشینانه کشتی بودند. وقتی سگها دیدند که شاهزاده مانیکین به جای اون که بگه شلیک کنید با لحن مهربان و دوستانه گفت آهای سگ های خوب، دورش جمع شدند. دم جمع باندند و با پنجه هاشون به اون دست دادند. و خیلی زود با اشاره بهش فهمودند که دلشون می‌خواد شاهزاده همراهشون بره و سرنوشت کشتی رو به حال خودشون بگذاره. شاهزاده که خیلی هم کنجکاف شده بود، موافقت کرد که با اونها راهی بشه. اون با دلبر قرار گذاشت که 15 روز منتظرش بمونن و اگر بعد از این مدت برنگشت، بدون اون به راهشون ادامه بدن. بعد با دوستان جدیدش به راه افتاد. وقتی مانکین وارد اون سرزمین شد با تعجب زیاد متوجه شد که تمامی کشزارها به زیر کش رفتن و گاریها و خیش‌های شخمزنی توسط ها و نرگاوه ها کشیده میشن. هر وقت از کنار روستایی میگذشتن اون تمامی کلبه ها و خونه های روستایی را رو مرتب و زیبا میدید خلاصه در همه جا سعادت و برکت به چشم می اونها در یکی از روسته توقف کردند و غذای بسیار خوبی برای شاهزاده آماده کرده بودند. در حال غذا خوردن بودند که کالسکی ای از را رسید که دو اسب بینظیر اون رو میکشیدند. از این به بعد سفرش رو با راحتی بیشتری ادامه داد. در جاده کالسکه های بیشماری به زیبایی کالسکه خودش عبور میکردند که سرنشینان اون کالسکه ها سگان مدراز گوش آویخته بودند و به اون بسیار احترام می زشتند. بالاخره به شهری رسیدند مالکین تردید نداشت که اونجا پایتخت اون کشوره همه از ورود اون به شهر کاملا باخبر بودند چون تمامی ساکنان در کنار درها و ها بودند و همه سگهای کوچولو از دیوارها و دروازه ها بالا رفته بودند تا ورودش را تماشا کنند شاهزاده از این استقبال صمیمانه خیلی خوشحال شد و با اشتیاق زیاد به اطراف خودش نگاه میکرد بعد از عبور از چندین خیابان پهن با سنگفرش عالی و راسته درختان زیبا، وارد قصری بزرگ شد که پر از سگ سرباز بود. شاهزاده در پاسخ به احترامشون رسم ادب رو به جا آورد و خودش فکر کرد اینها حتما محافظان پادشاه هستند. خالص ایستاد و اون خودش رو در برابر پادشاه دید که روی یک قالی نفیس ایرانی ایستاده بود. چندین سگ کوچولو دورش حلقه زده بودند. و مراقب بودند تا ها برای اعلیحضرت مزاحمتی ایجاد نکنند. پادشاه زیباترین سگ مودرازه گوشاویخته بود. در چشمان بزرگش حالتی از غم به چشم می‌خورد. پادشاه با دیدن شاهزاده مانکین از جا پرید و اندو از چشمانش فرار کرد. پادشاه به درباریانش اشاره کرد و آنها هم یکی یکی پیش تازه وارد آمدند و بهش عدای احترام کردند. شاهزاده فکر میکرد که از فرد شگفت زدگی نمیتونه سر حرف رو با اونها باز کنه. همین که با پادشا تنها شد، علا حضرت به دنبال وزیرش فرستاد. وزیر از روی نوشته پادشاه مطالبه خطاب مانکی نوشت و سخرانی معدبانه ایراد کرد. ضمن حرفاش از اینکه نمیتونن باش حرف بزنن اظهار تعصف کرد. اونها فقط از طریق نوشته میتونستن با شاهزاده ارتباط برقرار کنند. حتی گفتند که میدونن یادگیری زبان سگها برای شاهزاده خیلی مشکله. بعد مانیکین هم جواب مناسبی نوشت و از پادشاه تقاضا کرد برای ارزای حس پنچخاویش تمام ماجره عجیبی رو که تا اون زمان دیده و شنیده تعریف کنه. به نظر می که این خواسته خاطراتی رو در ذهن پادشاه زنده کرد. اون به شاهزاده فهموند که اسمش پادشاه با یارد هست. یک پری که نزدیک به قلمرو حکومتش زندگی می‌کرد از تعهد عاشق اون شد و برای ازدواج با اون هر کاری میتونست کرد اما پادشاه زیر بار نرفت چون خودش عاشق ملکه جزایر ادویه بود بالاخره پری که از این بیتفاوتی خیلی خشمین شده بود اون رو به وضعی که شاهزاده میدید تبدیل کرد اما ذهنش رو تغییر نداد و فقط اون رو از محبت سخن گفتن محروم کرد پری که از این انتقام دلش خونک نشده بود همه یه پادشاه رو هم به سرنوشت اون محکوم کرد و گفت واق, واق کنید و بر چهار پا بدوید تا زمانی فرا برسه که با عشق به من پاسخ داده بشه. این جمله یعنی همون که پری گفته بود تا ابد سگ باقی خواهید ماند. شهستاد مانیکین هم دقیقاً چنین این عقیده داشت. با وجود این به پادشاه چیزایی رو گفت که همه ما در چنین شرایطی بر زبان میاریم و ادامه داد اعلی حضرت باید صبور باشند اون دلش واقعا برای پادشاهی بیچاره میسوخت از هر دری برای تسلای خاطرش با اون حرف میزد و قول داد که هر کاری بتونه برای کمک به اون انجام بده بالاخره اونها دوستانه یک دل شدند و پادشاه مقرورانه تصویر ملکه جزایر ادویه رو به مانکین نشون داد. اون هم در مورد شایستگی و زیبایی صاحب تصویر کاملا با پادشاه موافق بود. شاهزاد مانکین هم داستان زندگیش رو تعریف کرد و از کار بزرگی که بهش دست داده و سفری که با اون گذاشته بود حرف زد. پادشاه با یارد اون رو راهنمایی کرد و چیزهایی بهش گفت که برای ادامه سفرش خیلی مفید بود. بعد با هم به سمت ساحلی که کشتی در اونجا بود حرکت کردند. در یانوردان از دیدن دوباره شاهزاده خیلی خوشحال شدند البته خبر داشتند که اون صحیح و سالمه تمام توشه راه رو که پادشاه بهشون داده بود به عرشه کشتی بردند و یک بار دیگه آماده حرکت شدند پادشاه و شاهزاده با ناراحتی خیلی زیاد از هم جدا شدند پادشاه به مانکین اصرار کرد که یکی از زیردستانش به نام موستا رو با خودش ببره تا در همه جا حاضر باشه و وفاداران بهش خدمت کنه باد مساعد میوزید و اونها خیلی زود چنان دور شدند که سرزمین سگهای مدراز کاملا از نظرشون محو شد سرنشینان کشته تا مدتی با ماجرای قابل ذکری روبرو نشدند مدتی بعد خودشون رو در دو فرسنگی بندرگاهی دیدند و به سمتش حرکت کردند شاهزده فکر کرد بد نیست در اونجا اقامت کنه اون از ورود به شهرها دوری می کرد چون دیگه پولی براش باقی نمونده بود و ضمنن اصلا نمی دونست که بعد از این چه کار باید بکنه. ملوانان اون و مستار به ساحل رسوندند و با اندوه خیلی زیاد به کشتی برگشتند. شاهزاده و ملازمش در مسیر برای افتادند که به نظر می رسید درسته. به زودی به چمنزار سرسبز و زیبایی در کنار یک جنگل رسیدند. اون چمنزار بعد از سفری طولانی براشون جای دلچسبی بود اونها زیر سایه درختی نشستند و استراحت کردند و سرگرم تماشای جست و خیز و مسخر بازی های میمون زیبایی کوچکی در بارای درخت نزدیک به خودشون شدند شاهزاده که مجذوب حرکات میمون شده بود از جا پرند شد و سعی کرد حیوان رو بگیره اما میمون زرنگی تمام از دستش فرار کرد یک دفعه میمون به حرف اومد و از اونخوااص هر میره اون رو با خودش ببره. شاهزاده قول داد این کارو بکنه. میمون جسنا روی شنش پرید و در گوشه زمزمه کرد ما پول نداریم مانیکینی بیچاره همگی در وضع بدی گیر کردیم و تازه نمیدونیم چیکار باید بکنیم. شاهزاده با تعصف گفت: بله واقعا همینطوره. من هم چیزی ندارم بهت بدم. نه شکر نه شیرینی یا هر چیزی که، تو حیوان قشنگم دوست داری میمون کوچولو گفت حالا که هم به فکرم هستی و هم صبر و حوصله داری راه تخت سنگ طلایی رو نشونت میدم فقط باید نوستا رو در اینجا بگذاری تا منتظرت بمونه شاهزاد مانکین با کمال مل قبول کرد بعد میمون کوچولو از روی شونش بالا پرید و روی درختی نزدیک نشست و بعد در دل جنگل از شاخهای به شاخه دیگه با سرعت زیاد پیش رفت و فریاد زد دنبالم بیا این کار برای شاهزاده خیلی ساده نبود پس میمون کوچولو آرومتر میرفت و مسیرهای راحتتر رو نشونش میداد تا اینکه جنگل انبوهتر شد و بعد اونها به فضایی صاف و سرسبز در پای کوه رسیدند در وسط کوه تخت سنگی به چشمی میخورد که حدود پنج متر ارتفاع داشت وقتی کاملا بهش نزدیک شدند میمون گفت این تخت سنگ به نظر قشنگ و محکمه اما اگر با نزه کوچیک یک ضربی بهش بزنیم میبینی چی میشه شاهزاده با نیزهش ضربه محکمی به سنگ زد و سنگ چندین تکه شد لایه نازک از خاک روی چیز رو پوشونده بود داخل تخت سنگ جسم سختی از سلای ناب قرار داشت بعد میمون کوچولو که از تعجب و شگفتی شاهزاده خندش گرفته بود گفت حالا این سنگ رو بشکن و هدیت رو بردار هر قدر که لازم داری بردار شاهزاده با حق شناسی زیاد تشکر کرد و کوچکترین تکی طلا رو برداشت بعد از این کار میمون کوچولو ناگهان به بانوی بلند قد و مهربان تبدیل شد و گفت اگر همیشه اینقدر مهربان و قانه باشی مطمئن باش که میتونی از پس مشکل‌ترین کارها بر بیای، به ادامه بده و نگران کم شدن طلا نباش. اون تک تلاشی که با مناعت تبردشته برداشتی هیچ وقت کم نمیشه. پس هرقدر میخوای خرجش کن، فروتنی و قناعت تو رو از خطری حتمی نجات میده. حالا همراهم هم بیا. با گفتن این حرف، اون رو از راهی دیگه به جنگل برد. در اونجا تعداد زیادی مرد و زن دید که صورتهاشون رنگ پریده و چشمانشون گد رفته بود اونها به هر طرف میدویدند و دیوانوار در زمین یا در هوا دنبال چیزی میگشتند با هر صدایی که میشنیدند به جنبش در همدیگر را حول میدادند و از شدت اشتیاق دیوانوار برای پیدا کردن راهی به سمت تخت سنگ طلایی همدیگر را زیر دست و پا می پری گفت. میبینی چه تقلایی میکنند اما کاملا بیفایده است بالاخره از ناامیدی میمیرند همونطور که صدها نفر قبل از اونها مردند همین که به جای اول خودشون که موستا رو در اونجا گذاشته بودند برگشتند پری ناپدید شد شاهزاده و همراه وفادارش که با شادمانی از صاحبش استقبال کرد نزدیکترین راه رو به سمت شهر در پیش گرفتند اونها چند روز در شهر موندند و شاهزاده چند اسب و هدایایی برای شاهدخت خرید همینطور در مورد جاده که به قلمرو حکومت شاهدخت منتهی شد هم پرسجو کرد و فهمید که خیلی دوره اطلاعات بیشتری به دست نیورد تا موقعی که به کوه قفقاز رسید در آنجا موضوع کاملا فرق می کرد. چون همه درباره شاهدخت سابلا صحبت میکردند و ها از سراسر نقاط جهان به سمت دربار پدرش در سفر بودند در اونجا شاهزاده چیزهای واقعی زیادی در مورد زیبایی و ثروت شاهدخ شنید البته درباره رقیبان بیشمار خودش و قدرتشون هم چیزایی شنیده بود یکی از شاهزادگان سپاهی با خودش آورده بود یکی دیگه گنجینهای هنگفت داشت و سومی نهایت زیبا و کارازموده بود مانکین بینوا چیزی نداشت مگرظماسخ برای رسیدن به شاهدخت سگ وفادار و اسم خنددارش چیزی نبود که کمکش کنه اون که هنوز اسم دیگه ای هم برای خودش انتخاب نکرده بود آقیلان تصمیم گرفت دیگه بهش فکر نکنه بعد از دو ماه تمام مسافرت بالاخره به شهر ترلینتین پایتخت سرزمین شاه سابلا رسید در این شهر بود که داستانهای ناراحت کننده درباره کوهستان یخ شنید هیچی یک از کسانی که سعی کرده بودند از کوه بالا برند برن برنگشته بودند. اون همینطور از داستان زندگی پادشاه فاردا، کینبراز، پدر سابلا هم با خبر شد. ظاهرا اون که پادشاهی قدرتمند و ثروتمند بود، با شاهدخت زیبایی به نام بیربنتاین ازدواج کرده بود. سالها از زندگی سراسر خوشبختیشون گذشته بود که یک روز در حالی که با شادمانی و خورمی سرتم سواری می کردند، به علت حماقت سرنوشت تلخی رو که برای خوشبختیشون رقم خورده بود از یاد بردند. داستان این بود که عجوزهی در کنار راه نشسته بود و سعی میکرد با ها کردن انگوشتانش رو گرم کنه. و سرشون داد زد. حالا میبینم خوشبختی یعنی چی. پادشاه بسیار عصبانی شد و میخواستم بیهش کنه اما ملکه مانع شد و گفت احتیاط کن سرورم. کاری نکن که به درد سر بیفتیم بدون شک اون یک پریه پری گفت این یکی رو درست گفتی و بلافاصله ایستاد و در حالی که اونها با ترس نگاش میکردند خودش به موجودی قول پیگر و هراسانگیز و اساش به های آتشین با بالهای عظیم تبدیل شد ردای ژندش به ردایی طلایی و کفشهای چوبیش به دو تخته صاف تبدیل شدند که از اونها آتیش بلند میشد اون ادامه داد: "اینجا حق با توه، حالا خواهید دید که چی بر سرتون میاد. اسم منو فراموش نکنید. پری گورگونزولا." با گفتن این حرف سوار اژدها شد و پرید. کفشاش ردی از آتش و دود پشت سرش بر جا میگذاشت. فارداکمبروس و بیربنتاین سعی کردند اون رو آروم کنند. بنابراین فروتنانه از ش عذرخواهی کردند و تقاضا کردند که برگرده اما اون دیگه نگاهیم به اونها نکرد و خیلی زود از نظرها ناپدید شد و اونها رو به انتظار پیش آمدی شوم تنها گذاشت کمی بعد از این ماجرا ملکه دختری به دنیا آورد که بیتردید زیباترین موجود تا اون زمان بود تمامی پریان شمال به جشن نامگذاریش دعوت شدند درباره گورگونزولای بدها به همه هشدار دادند. اون هم اومده بود اما نه به مهمانی رفت و نه هدیهای دریافت کرد. مهمانان حاضر شدند و پشت میز نشستند. اونها هدایای خودشون رو به شاه دخت دادند و براش آرزوی نیکبختی کردند. در همین موقع پری بدها پنهانی پا به قصر گذاشت. خودش رو به گربه‌ای سیاه تبدیل کرد و زیر گهواره بچه پنهان شد. تا ندیمه ها روشون را رو از گهواره برگردوندند و سرگرم کار خودشون شدند، اون بیرون پرید و در یک لحظه قلب شاهدخت نوباور رو دزدید و فرار کرد. فقط چند سگ و چند شاگرد آشپز در حیات قصر دنبالش کردند. همین که به بیرون قصر رسید، سوار کالسکه شد و یک راست به سمت قطب شمال حرکت کرد. وقتی به جایگاه خودش رسید، گنجینه یه شده رو در قلی کوهستان یخ در محفظهی قرار داد و اطرافش را با موانع بیشماری پر کرد تا خیالش از همه چیز راحت باشه. بعد با لبخندی پیروزمندانه به خونه برگشت. پریان دیگه بعد از مهمانی بدون اینکه بفهمند چه اتفاق ناگواری روی داده به خونه هاشون برگشتند. پادشاه و ملکه هم بی اطلاع از همه چیز خوشحال بودند. سابلا روز به روز زیباتر میشد. اون هر چیزی رو که یک شادوخت باید بدونه بدون کمترین زحمتی یاد میگرفت. اما همیشه به نظر می رسید چیزی مانه میشه که کسی عمیقا شیفته اون بشه. اون صدایی لطیف داشت اما براش فرق نمی کرد ای که میخونه خونه شادی یا غمگین و معنای اون رو هم نمیفهمید. فهمید. هر کس هم که ترانه هاشو می شنید می گفت واقعا بیعب و نقص میخونه، اما زرافت نداره، آوازهایی که میخونه روح نداره. سابلای بیچاره، وقتی که قلبش در جایی دور در قلعه کوهستان بود، چیکار میتونست بکنه؟ هیچ وقت سرزنده نبود. با گذشت زمان، با وجود ستایش تمام دربار و عشق و علاقه بیش از حد پادشاه و ملکه به اون، بیشتر مشخص میشد که چیزی در وجودش نیست. چون وقتی کسی نتونه دیگران رو دوست داشته باشه، دیگران هم نمیتونن بهش عشق بورزند بلاخره پادشاه با مشاوران خودش ای گذاشت و پریان رو هم دعوت کرد تا شاید اونها پی به علت این مشکل ببرند. پادشاه پس از شرح کامل گرفتاری های پیش آمده از پریان تقاضا کرد تا مشکل شادخت رو حل کنند. اون گفت میدونم که یک جای کار ایراد داره، ولی نمیدونم مشکل کجاست و چیکار باید بکنم. همگی بهش اطمینان دادند تا جایی که می دونن از یک اقدام شایسته برای شاهدخت فروگذار نکنند و چیزی را از قلم نان و هر کاری که لازم باشه در حق همسایه خوبی مثل اون انجام بدن. بعد از جلسه به سراغ سابلا رفتن. همین که اون رو دیدند یک صدا فریاد زدند. آه چه وحشتناک! اون قلب نداره. با شنیدن این جمله ترسناک، پادشاه و ملکه فریادی از ناامیدی و دلشکستگی سر دادند و دست به دامنه پریان شدند تا برای این بی سابقه چارهای پیدا کنند. بزرگترین پری به کتاب جادو که همیشه با خودش داشت و اون رو از بند نقره‌ای زخیم کمربندش آویزون کرد مراجعه کرد. بلافاصله در اون کتاب مطلبی خون درباره اینکه پری گرگنزولا قلب شاه رو دزدیده. اون همینطور از مطالب کتاب به کارهای دیگری که پری پیر نابکار با قلب شاهدخت کرده بود پی برد. پادشاه و ملکه یک نفس فریاد زدند: حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ پری جواب داد: شما حتما از دیدن و دوست داشتن سابلا با وضعیتی که داره لذتی نمیبرید. اون فقط تصویری زیباست و دیگر هیچ این وضع مدتها طول میکشه، اما فکر میکنم که بالاخره روزی قلبش رو دوباره به دست بیاره. توصیه میکنم که همین الان تصویر اون رو به سراسر جهان بفرستید و قول بدید که هر کس موفق بشه و قلبش رو برگردونه اون رو با تمام دارایی بهش خواهید داد. اون اونقدر زیباست که هر شازاده ای رو در سراسر جهان وامی داره تا دست به این کار بزنه. اونها هم همین کارو کردند. شاهزاده مانیکین تا اون موقع شنیده بود که 500 شاهزاده بدون اینکه به ملازمان و زیردستانشون اشاره بشه در برف و یخ جانشون رو به خطر انداختند تعداد بیشتری هم در راه بودند هر روز کسانی به اونجا می میومدند تا بخت خودشون رو بیازمایند مانیکین کمی فکر کرد و تصمیم گرفت به دربار بره ورودش توجه کسی رو جلب نکرد چون بیدبدب و به وارد شهر شده بود اندام تنومندی هم نداشت که جلب توجه کنه شکوه و عظمت رقیبانش هم پادشاه براس رو تحت تاثیر قرار داده بود با این حال اون با وقار و ادب تمام به پادشاه ادای احترام کرد و نهایت ادب رو به جا آورد و اجازه خواست تا شاه زیبا رو ببینه و طبق رسم دربار به اون ادای احترام کنه وقتی که شاهزاده خودش رو معرفی کرد، پادشاه با شنیدن نامش نتونست جلوی خندش رو بگیره و لبخندی زد. شاهزادهگانی هم که در اونجا گرد آمده بودند، شروع کردند به خندیدن. خب، تا همین یه قصه رو داشته باشید تا انشالله قسمت بعدی ببینیم که شاهزاده مانیکین چیکار میکنه روز و روزگار خوش. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها.